برنامه از گروه جوان و فرهنگ خالق و حقیقت سلام و درود بر شما همراهان فرهنگ و ادب ایران زمین افسانه‌ها، ها و قصه‌هایی ام که همه ما در دوران کودکی بارها و بارها اونها را از زبان پدر پدربزرگها و مادربزرگها شنیدیم و لذت بردیم خیلی از ماها با افسانهها به سفرهای رنگین سفر کردیم در واقع افسانهها خوابهای رنگین اقوام ابتدایی و تا مردم امروزی هند. زیرا به قصه گویان و شنوندگان امکان میدن تا به کمک تخیلات خودشون گامی فراتر از عالم واقعیت بگذارند و را که دست نیافتنی بیابند و لمس کنند افسانه کردی براتون در نظر گرفتیم به نام افسانه سندر و مندر بریرفت از کتاب افسانهها ها، نمایشنامه و بازی های کردی به گردآوری علی اشرف درویشیان روزی روزگاری مردی زندگی میکرد که دو تا پسر داشت یکی آقل و دیگری دیوونه اون که آقل بود اسمش مندر بود و اون که دیوونه بود اسمش سندر پدر که پیر شده بود دم مرگ وسیعتش رو کرد و عمرش رو داد به شما دو تا پسر بعد از مدتی مالی رو که از پدر به عرص بردند خرج کردند و فقط یه گاو و یه اولاغ برشون موند یه روز سندر یعنی همون پسر دیوونه گاو رو برداشت و به برادر عاقلش یعنی مندر گفت من میخوام برم و این گاو رو بفروشم مندر گفت برادر چرا این گاو رو میفروشی؟ این گاو به ما نون میده این کارو نکن سندر با کمال وقاحت به برادرش گفت به تو چه مربوطه؟ این گاو منه و هر کاری دوست داشته باشم باش انجام میدم خلاصه هرچه برادر گفت فایده ای نکرد و سندر گاو رو راهی کرد و از خونه خارج شد رفت و رفت و رفت تا به یه پیابون رسید گاوش رو به درختی که خوش شده بود بست. کمی اون طرفتر ای بود که جغدی روی اون نشسته بود سندر به جغد نزدیک شده و گفت سلام ببینم تو این گاو رو میخری جغد با شنیدن صدای سندر گفت بو بو سندر گفت گاو من خوب و سالمه اگه اونو بخری از فروشش سود زیادی میبری حالا اونو میخوای جغد باز صدا کرد. بو بوم. سندر با خوشحالی گفت ها پس معلومه که قبول کردی و خیلی با انصافی باشه. باشه باشه من با تو معامله میکنم. جغد صدایی کرد. بو بوم. سندر گفت نگران پولش نباش. پولش رو الان نداری فرده میام میگیرم. و بعد از جغد خدا حافظی کرد و گاو رو توی ها رها کرد و به طرف خونش براه افتاد سندر وقتی به خونه رسید با خوشحالی به برادرش مندر گفت من امروز یه معامله خوب کردم مندر پرسید گاو رو چیکار کردی؟ فروختی؟ سندر با حیجان جواب داد فروختم اونم چه فروختنی؟ مندر پرسید پولش رو چیکار کردی؟ سندر با افسردگی جواب داد بیچاره فول نداشت گفتم گفتم فردا میام ازت میگیرم مندر با عصبانیت گفت پول رو نگرفتی؟ تو تو گاو رو به کی فروختی؟ سندر جواب داد به یه امون جغده دیگه اون توی خرابه نشسته بود و منتظر بود من با گاوم بیامو مندر با عصبانیت سرش داد کشید ابله آخه جغت گاف برای چشه قصابه زمین شخ میزنه اون گاو به چه دردش میکنه؟ ها؟ سندر گفت خواب لابد لازم داشته که با من معامله کرده دیگه و بعد ادامه داد اصلا گاف خودم بود دوستشم اونو به امو جغده بفروشم تو تو چیکارم داری ها؟ به تو چه هستن؟ مندر با خش گفت خاک بر اون سرت رو کنن. با اون عقل و هوشت ارسیه رو به باد دادی سندر خنده ای کرد و گفت <تصفح> به باد دادم الان میبینی که از معامله با امو جغده چقدر پول گیرم میاد مندر پوز خندی زد و گفت <تصفح> دوریال بده آش به همین خیال باش و بعد هر دو به گوشه ای رفتند و مشهور کاری شدند فردا صبح زود سندر از خواب بیدار شد و رفت سراغ جغده توی خرابه. بعد وقتی به خرابه رسید دید که گرگا گاوش رو دریدن و خورده بودن و استخوناش رو هم به اطراف ریخته بوده. خلاصه دومش افتاده بود یه طرف، شاخش افتاده بود یه طرف و همش تکه پاره شده بود. جغده هم همون جای دیروزی روی خرابه ها نشسته بود سندر با دیدن جغده جلوتر رفت و گفت ای ای امون جغده چه زود سر گاه هم رو بریدی و قصابیش کردی حالا راستشو بگو چقدر نف بردی ها؟ جغده صدا کرد بو بم. سندر گفت خب الحمدلله که نف کردی حالا پول منو بده برم که خیلی کار دارم جغده صدا کرد بو بوم سندر عصبانی شد و گفت این صداها چی از خودت در ها؟ میخوای پول منو بالا بکشی هی بو بوم میکنی؟ و بعد عصبانی شد و چوبی رو که در دست داشت به دور سر خودش شرخوند و به طرف جغد پرتاب کرد جغد از روی خرابه ها پرید و چوب محکم به دیوار خرابه ها و دیوار فرو ریخت اما اما هفت خوم طلا از میون دیوار پیدا شد سندر تا چشمش به پولها و تلاها افتاد با خودش گفت ببین ببین این جغد لعنتی چقدر نف کرده فکر میکنه من این جالمی گاوم رو فروخته و این همه تلاها گرفته اون وقت بو بوم به من تحویل میده بی رند خلاصه. سندر نشست و مقداری از سکه های تلار و ریف توی طورهی که همراه داشت و چند تا هم ناسزا نسار جغده کرد و به طرف خونش راه افتاد سندر به خونه که رسید با خوشحالی به برادرش مندر گفت بیا بیا ببین چقدر پول آوردم جغد برجنس هم قصاب بود هم از معامله با من کلی پول سود برده بود اون وقت نهمیخواست پول منو بده و هی بوم بون بون میکرد مندر با دیدن توبرهی طلاها از تعجب دهنش وامود سندر گفت چی باور نمیکنی این پولا مال خودم باشه ها تازه یه آلمه دیگه هم پول و سکه بود دیگه نمیتونستم اونا رو بیارم و بعد اضافه کرد بیا بیا اینا رو بین خودمون تقسیم کنیم مندر که آقل بود فهمید که برادرش حتما گنجی پیدا کرده با خوشحالی گفتم. تقسیم سکه ها رو بذار برای بعد بریم بریم بریم بقیه سکه ها رو هم بیاریم سندر قبول کرد و با مندر براه افتادند به خرابه رسیدند و همه سکه ها رو جمع کردند و به خونه را بردن بعد از اینکه کارشون تموم شد و سکه ها رو توی زیر زمین پنهون کردن مندر به سندر گفت ببین سندر مواد این قضیه رو برای کسی تعریف کنی اگه کسی از این سکه ها بو ببره همه سکه ها رو از ما میگیره بدبخت میشیم سندر گفت باشه باشه چیزی نمیگم مندر گفت خب حالا برو و کاسه پیمونه خونه کت خدا رو بگیر و بیار باید سر فرصت سکه ها رو پیمونه بگیریم بالاخره باید حساب و کتاب داشته باشیم ها سندر اولین قدم رو که برداشت مندر گفت صبر کن اگه کسی پرسید پیمونه رو برای چی میخوای؟ بگو میخواییم گندمامون رو پیمونه کنیم. چیز تیگه نمیگی ها. باشه؟ سندر گفت. ولی ما گندم نمیخواییم پیمونه کنیم. میخواییم سکه هامون رو. مندر با عصبانیت گفت. ابله ابله. مگه نگفتم راجب سکه ها چیزی نگو. برو. برو بگو پیمونه رو برای اندازگیری گندمامون میخواییم برو دیگه سندر به درخونه یک کت خدا رفت و به زن کت خدا گفت سلام اومدم پیمانتون رو قرض بگیرم زن کت خدا پرسید پیمونه؟ میخواییم چیکار؟ سندر گفت والا یه مقدار سکه داریم میخواییم اونا رو حساب کتاب کنیم زن کت خدا فورا نزد خدا رفت و ماجرا رو برای اون بازگو کرد. کت خدا گفت زن من حتم دارم کاسه ای زیر نیم کاسه این دو برادره. برو مقداری غیر ته کاسه بچسبون تا ببینم اونا چه چیزی میخوان پیمونه کنن. و بعد اضافه کرد این سندر هم عقل درست حسابی نداره نمیشه حرفش رو قبول کرد زن رفت و مقداری غیر آورد و به ته کاسه پیمونه چسبوند و به دست سندر داد سندر هم کاسه پیمونه رو گرفت و به خونه رفت سندر و مندر بعد از شمارش سکه ها اونا رو بین خودشون تقسیم کردند سندر پولاش رو برد زیر زمین قایم کرد و مندر هم شروع کرد به خوشگذرونی و به باد دادن پولها خلاصه کار مندر به ظاهر عاقل هفثانه ما به جایی رسید که برای شام شب محتاج مود یه روز رفت بازار تا شاید کاری برای خودش پیدا کنه و از این فقر و نداری نجات پیدا کنه در این موقع دید که یا آدم درشته کلبون نزدیک شده گفت تو چه کاره ای؟ مندر آهی کشید گفت هیچ من هیچ کارم مرد درشت اندام گفت میخوای نوکر من بشی؟ من به نوکر کاری و وفادار احتیاج دارم مندر با خوشحالی گفت از الان من نوکر و چاکر شمام. مرد گفت باشه ولی من یه شرط دارم مندر پرسید چه شرطی؟ مرد گفت بریم خونه من توی راه برات میگم چه شرطی دارم مندر به همراه مرد به راه افتاد مرد بین راه گفت من کار سختی ندارم فقط چند تایی بز و گوسهند دارم که باید اونا رو به صحرا ببری ولی یه شرط دارم اگه از دست من راضی نباشی من حسابی تو رو کتک میذارم اگه من از دست تو راضی نباشم تو حسابی منو کتک میزنی خلاصه اون دو شرط و قرار رو گذاشتن فردا صبح که شد مرد بسفند و بازهاش رو شمرد و تحویل مندر داد و یه کوزه ماست و یه قرص نون گندم هم بهش داد و گفت این هم برای نهارت اما طور این نون رو باید بخوری که دورش دست نخوره و جوری ماست رو بخوری که چربی روی اون دست نخوره مندر نون و ماست و گله رو برد و رفت طرف صحرا همچی که نشست این گله ها رو رها کرد توی چمنزار مردم زور شد و وقت نهار اومد از نون بخوره دید که هر جوری بخوره دورش تکه میشه با خودش گفت خدایا گشنمه چجوری بخورم چجوری نخورم و خلاصه تصمیم گرفت که نهارش رو نخوره است که شد گوسفندو رو جلو انداخت و رفت طرف خونه اربابش ارباب روی صندلی در خونش نشسته بود گوسفندو رو شمرد و دید که همش درسته گفت خب ای نوکر از دست من راضی هستی مندر با ناراحتی گفت واللاه خدا از دستت راضی نباشه از گرسنگی مردم آخه چجوری این نون رو بخورم که دورش دست نخوره چجوری این ماست رو بخورم که چربی روش خراب نشه مرد گفت آه پس حالا که از دست من راضی نیستی طبق قول و قرارمون باید من حسابی تو رو کتک بزنم خلاص مندر بیچاره افسانی ما اجازه داد تا اربابش اونو زیر مشت و لگت بگیره و حسابی مشت مالش بده به بعد هم آش و لاش به طرف خونه نزد برادرش سندر مندر به خونه که رسید آه و نال کنان رفت و گوشه دراز کشید سندر با دیدن برادرش با اون وضعیت پرسید چی شده چرا اینقدر آشلاشی مندر همینطور که داشت آه و ناله میکرد جواب داد آه آه رفتم نوکری اربابم منو به این روز انداخت آخ کبر دست سندر صداش رو بالا برد و گفت اربابت غلط کرده پدرش رو درمیارم اون کارش کجاست باید برم و حسابش رو بذارم کف دستش مندر ناله کنان گفت آه آه, آه اون آه ای تو بازار وای سرم دستم سندر پا شد و رفت توی بازار پرسون پرسون رد مرد هیکلدار یا همون ارباب رو پیدا کرد و رفت و بهش گفت تو نوکر نمیخوای مرد هیکلدار نگاهی به سندر انداخت و گفت چرا چرا اتفاقا یه نوکر کاری و وفادار احتیاج دارم البته من یه شرط هم دارم سندر به تندی گفت من نوکر تو هر شرطیم که داشته باشی قبول میکنم مرد گفت شرط اول اینه که اگه تو از دست من راضی نباشی من حسابی تو رو کتک میزنم و اگر من هم از دست تو راضی نبودم تو منو حسابی کدک بزن سندر گفت قبوله قبوله و قرار شد فردا اول وقت بزها رو به صحرا ببره و حسابی بکرونه و سیر سیر بشن صبح زود سندر بزها رو برداشت و رو کرد به صحرا و باغ و بستان بزها رو رها کرد توی اولین باغی که سر راهش بود و خودش هم رفت بالای درخت سیبی که روی هر شاخش چندین سیب آویزون بود و مشغول تکوندن درخت شد بزها پایین درخت مشغول خوردن سیبها و برکای اونا شدن سندر از درخت پایین اومد و به بزها گفت معلومه که همتون نمک به حرومین همه سیبا رو خوردین و برای ارباب چیزی باقی نزاشتین به بعد سر تمام بزها رو برید و به طرف خونه ارباب حرکت کرد ارباب با دیدن سندر که دست خالی بود با نگرانی پرسید چی شده بزا کجان سندر گفت ارباب به جان خودتون تمومشون نمک به هرون بودن من هی سیب تکوندم و هی اونا خوردن هرکی گفتم برای شما ارباب بذارن به حرفم گوش ندادن منم هم همه رو تنبیه کردم ارباب با نگرانی پرسید تنبیه کردی؟ چجوری؟ سندر به تندی جواب داد یه تنبیه حسابی همهشونو سر بریدم نمک به حروم حق نشناست ارباب: با شنیدن این حرف دو دستی کوبی توی سر خودشو گفت بدبخت شدم بدبخت سندر که منتظر همچین موقعیتی بود به ارباب گفت ارباب جان از من راضی هستی؟ ارباب که شدت اصابانیت و ناراحتی قول و قرارش را از یاد برده بود با عصبانیت گفت رازی؟ چه رضایتی؟ تو تمام سرمایه منو باد دادی میخواستی ازت راضی باشم مرد که دیوونه؟ سندر با خوشحالی گفت ها, ها حالا شد پس بی زحمت خودت رو برای یه مشتمال حسابی آماده کن و تا ارباب خواست به خودش بیاد اونو زیر مشت و لگت گرفت و حسابی آش و لاشش کرد و انتقام برادرش مندر رو از ارباب گرفت زوی ایرانی سندر و مندر رو براتون نقل کردم از مردمان سرزمین باستانی کردستان برگرفته از کتاب افسانه ها نمایشنامه ها و بازی های کردی جلد اول به گردآوری علی درویشیان. از ویژگی های افسانه ها میشه به ابهام زمان و مکان اشاره کرد هیچ افسانی خودش رو در بند زمان و مکانی خاص قرار نداده همین ویژگی به افسانه ها امکان داده که همیشه فراتر از زمان و مکان باشند. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور. ویراستار بهار دیویان اجرا مهران بیستی صدابردار احمد احمدی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدو.